در اواخر هفته دوم ازدحام به حدی شورنگیز شد که دولت و دستگاه شهبانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلاقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود صورت کشیده زنی که ظلفهایش مانند غیر مذاب روی شانه ها جاری بود همه چیز این صورت محف می بینی و دهان و گونه و پیشانی با رنگ ای نمایان شده بود گوی نقاش می بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم در خاطره او اثری ماندنی شدند چشم ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می خیرگی در آنها مشهود نبود اما پرده های حایل بین صاحب خود و تماشا کننده را می دریدند و مانند پیکان قلب انسان را می خراشیدند. آیا از این چرش ها می بایستی در یک لحظه بعد عشق یک لحظه بعد اشک بریزد یا اینکه خنده تلخی به اما دور لبها ها محسوس نبود. آیا چشم ها و کشیده بودند که بخندند و تماشا کننده را به زندگی تشویق کنند و یا دلخسته ای را به آیا این چشم ها از آن یک زن پرهیزگار را از دنیا گذشته بود؟ یا کام بخش و کام جوی که دنبال تومه می گشت؟ یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا میخواستند خواستند تومه ای را به دام بندازند؟ یا الله لح له؟ طلب و تمنا میزدند آیا صادق و صمیمی بودند یا موزی و گستاخ عفیف یا وقیه آیا بی اتنایی جلوگر شده بود یا التماس و التجا اگر التماس می چه می‌خواستند؟ این نگاه این چشم های نیمه خمار و نیمه است چه داستان ها که نقل نمی همه چیز این صورت عادی بود پیشانی بلند، بینی کشید و قلمی، چانه باریک، گونه های استخانی، زلف های عبریشمی، باریک، جمعاً اثر خاصی در بینند باقی نمی‌گذاشتند. صورت از آن زن زی بسیار زیبایی بود، اما چیزی که تماشاچی را مپوت میکرد، زیبایی صورت نبود، معما رمز در خود چشم بود، چشمها باریک و مورب بودند گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جعل میساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر میدهد. آن وقت تنفر انسان برانگیخته میشد. در صورتی که دوستان و نزدیکان و استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است تنها یک زن گویی مدتی مدل نشسته بود و از آن زنی از آن زن نه صورتی در دست است و نه آثار نقاشی شبیه او دیده می شود. وقتی او را سهران تبعید کردند مجرد بود. کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد. سه سال خوردهی در کلات به سر برد و انجام مرد. در یکی دو روز اول روزنامهها این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند.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 این مرد خاموش که جمعه هایش از دوسه کلمه تجاوز نمیکرد و تا از او سوالی نمیکردند جوابی نمیداد آن هم فقط با آره یا نه آدمی نبود که رازهای در درونیاش را به کسی بگوید آن هم به زن جوانی با چنین چشمهایی یک نکته مسلم بود استار تودار و رازپنهانکن بود از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت چون در حالی که شاعران دوران هر روز غزلها در متش شاه میگفتند و کاسه ها می کسی سراغ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد موریدان استاد از خود میپرسیدند چرا از این پرده را چشمهایش گذاشته؟ ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد اما چشمهایش یعنی چشم زنی که استاد به او نظر داشته است. پس طرف توجه صاحب چشم بوده، نه خود چشم ها. زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشم یعنی چشم زنی که او را خوشبخ کرده یا به روز سیاه نشندند. چشم های زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته، و نقاش را برنگیخته است که در قربت هنگامی که زجر ستمگران نامد را تحمل می کرد به فکر آن زن صاحب چجم ها باشد و تصویری بل و خیالی از او بسازد شکی نیست که این تصویر خیالی است زیرا هیچ کس ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سر و کار داشته باشد شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمیتوانسته است داشته باشد اقلن در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منطعی شده است موثر بوده است کنیش بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند آنهایی را که دروبر استاد بودند از مد نظر گذراندند. تصویر را شبیه هیچیک از زنان و دوستان و شاگردانش نیافتند پیش ماکان چند دختر از خانواده های اعیان تهران نقاشی یاد میگرفتند. استاد به خانه های آنها میرفت اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شاهطی به این تصویر نداشتند. به علاقه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده‌ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی به در اندازند. تاهند که در کلات زیر دست معمور پلیس،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 نکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم می داند چیزی نمی گوید و یا نمی خواهد که بگوید به علاوه آقا رجب می گوید که او شباهتی ما بین چشم های این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی بیند به چقدر این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور؟ که از قربت پس از مرگش هدیه‌ای برای معشوقش فرستاد و بدین وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد یا اینکه می‌خواسته از بزنی که با چشمهایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم به طوری که خود ناتوانسته خیشتن را بشناسی و من میدونم تو باعث شدی که من امروز زجر بکشم شاید هم می‌خواهد بگوید ای چشمها اگر صاحب شما با من بود من تاب آوردم و کامیاب میشدم اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه، از این قیافه بی حالت چه استنباط میشد؟ شد؟ اینها همه تخیلات است تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشمها چه می میشود؟ چگونه میتواند به این پرسش ها پاسخ بدهد؟ بیش از ده سال از مرگ استاد گذرد. دستگاه دیکتاتوری واژگون شده. مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. هنوز چشم چشمهای این پرده فراموش نشده. امروز هیچ زنی از طبقه ایان به‌خصوص از آنهایی که به نحوی وی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان استاد ارتباط کوچکی داشتند نیست که خود صاحب این چشم ها قلم داد نکند. همه خود را مشوق استاد می‌دانند و همه هر کس بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سردی داشتند